ولم یکلکو ولي من از وكبره و کبره و على خير سلات و سلام سيدنا خیر حبيب و العالمين بریته و مولانا ابلغوا المستف محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحی بطراب مقدم خدا و لعنت الله على عدای مجمعین من الان, الان قیام یوم الدین خوب شب بیست و ماه مبارک رمضان خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم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 خب علاوهز ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر مواعظ و فرمایشات درربار امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام در نامه سی و یکم نهجل و شبای قبل عرض کردم دیگه ما به فرازهای پایانی این نامه رسیدیم دیگه تو این چند شبی که از عمر این جلسه باقی مونده دیگه یه چند جمله دیگه هم از این فرازهای پایانی عرض میکنم دیگه ما شرح این نامه رو به همین اکتفا میکنیم امشب در دنباله جملات قبلی به این جمله میرسیم که امیر به فرزندشون میفرماین که این كنت جازعن علا ما تفلت من یدیک فجز علا کل مالم یسل علیک اینم خلاصه یه جمعه عرضشمندیه که تو قرآنم شاید شبیه شد داریم که عرض میکنم به فرزندشون میفرماین که اگر میخواهید بر اون چیزی که از مال دنیا از دستت رفته جزع کنی، فضع کنی، بیتابی کنی، قصه بخوری چرا جزع نمی کنی، فضع نمی کنی به اون چیزهایی که از دنیا به دستت نرسیده خواهد بگید اینا شبیه همه خیلی چیزا تو این دنیا هست که به ما نرسیده این توجه بفرمید مثلا بعضی برج دارن بعضیا کاخ دارن بعضی ها کارخونه دارن بعضی ها پاساج دارن خمینا هیچ کدومش به ما نرسیده میگه آدمی که جزع میکند بیتابی میکند آنچه که از دنیا از کفش رفته این مثل کسی میمونه که جزع میکند به این که چرا اینا به من نرسیده این همه چیز تو این دنیا هست ما ازش بی نصیبیم اینم روی اون میگه خیلی آسم این زمین نمیاد که میلیاردها ها الان تو حساب بانکی پول است. مردم دارن ما نداریم حالا 500 تومن هم رو گم کردیم این گفت اینم رو اینجوری میفهمید که اینم شبیه قرآنه. قرآن قرآن میفرماید که مؤمن یکی از نشانه های مؤمن اینه لکیلات تعصوا الا مؤمن اگه چیزی از دنیا از دست بده قصه نمیخوره نشانش اش ولا تفروا به ما اتاكم اگه یه چیزی از دنیام بهش بدی شاد نمیشه یعنی سختم است بابا خیلی سخته امیرالمومنین تو نهج البلاغه تو همون کلمات قصار یه جمله‌ای دارن می‌فرماین از زهد زهد یعنی بیرقبتیه به دنیا خیلی ارزش هم داره آدم, آدم زاهد خیلی ارزش داره که خود عضرت امیر آدم زاهدی بود بیرقبت به دنیا اما چه زهدی نیست آدم فقیرانه زندگی کنه مثلا اینکه فقیرانه زندگی میکنه بهش نمیگن زاهد الان بعضی ها هستن بیغول نشینند کپر نشینند تو حلبی آباد زندگی میکنن. اما چشم در میارن برای مال دنیا گیرشون نمیادند این, این زوت نیست من حالو مثلا فرض کن نداره تو حلبی آبات زندگی میکنند همه بارون که میاد سخت به می آب میریزه خیست میشه نمید بگیم این آدم زاهدیه نه این ممکنه حاضر باشه برای پنی میلیون توم ها سر ببره گیرش نمیاد هرچی میدوه نمیرسه این زوت نیست یکی هم ممکنه مثل حضرت خدیجه خیلی سروتمند باشه همه رو در راه خدا بده این زاهد باشه بگه عرضش نداره همه رو میده این ممکن از کسی کاخنشین باشه ثروت زیاد داشته باشه بیرغبت به دنیا خود حضرت امیر آقا رئیس حکومت بود بیرغبت به دنیا امیرانونه که کم جایگاهی نداشته حالا اون جایگاهی که حضرت امیر داشت هیچ رئیس جمهوری داردن رئیس جمهور آمریکا انگر قدرت نداره عرب همه دنیا رو گرفته بودن دیگه تا این دیوار چین اومدن از این همه رو گرفتن هندو گرفتن پاکستان و ایران و ایران و موقع عبر قدرت بود گرفتن روم همه ایتالیای امروز بود گرفتن تو اسپانیا مثلا اندولوس اندولوس رو فرد گردن که همه اسپانیای امروز باشد کل آفریقا رو گرفتن که مصر و اینا همه زیر قلم رو حکومت امیر بود. حضرت امیر میگفت تو مصر مالک بره مالک اشتر مثلا اسپاندار مصر باشد کم قدرتی رئیس جمهور آمریکا شد اینقدر قدرت نداره اگه مقایسه بخوای بکنی اما همین آدم کرباس می‌گوشید نون جو میخورد هیچ رقبتی به دنیا نداشت با اون قدرت آدم زاهدی بود بی‌عتنایی به دنیا بود حالا یکی مثلا فقیرم هست اما چشم در میاره برای مال دنیایی پیش نمیاد به دستش نمی رسد ز زردیشت قلبیه درونیه که آدم رغبتی به دنیا نداره امیرالمومنین میفرماید خیلی هم عرضش داره همه بدبختی های بشر مال همین محبت دنیاست. اگر اگه آدم زاهد باشه از بسیاری از گناه ها در امانه خدا شاید آگه اکثر انحرافات مال خب به دنیاست. پیغمبر می فرمودن خب و دنیا رأس و کل خطیه <تصفيق> می گفت همه انحرافات مال دنیا دوستیه دنیا طلبیه که ما رو همه رو گرفته بیچاره کرده دیگه می پولو بیشتر دوست داری یا خدا رو میگه گه بهت بر نخوره پولو <تصفيق> واقعا اگر کسی بگه خدا رو دستشو ببوسی هم شد ببوسید. اگه کسی گُمَ خدا رو از پول بیشتر دوست داشته. ما الان خدا رو زیر می می‌ذاریم پولمون زیاد شه. درآمدمون زیاد شد. آدم از رشوه می‌گیره آقا خدا رو به غضب میارد که مال دنیاش زیاد شه. رشوه میده که خدا رو به غضب میاره که مال دنیاش زیاد شد. حالا دیگه چی بگم؟ من, من... من... کم آقا کسی بگه من خدا رو بیشتر از پول دوست دارم. امام حسین اینجوری بود امام حسین گفتن آقا اصغر رو بیشتر دوست داری یا خدا رو گفت خدا رو گفت بعد اصغر رو بدی گفت با جون با کمال میل میدم اینا ای... این میدی اصغر رو در راه خدا قربانی میدم خب هم میدی گفت میدم گفت خویتم میدی گفت میدم گفت ناموست هم میدی به اثارت گفت میدم یعنی همه چیشو اینا برای اینکه خدا رو دوست داشتن اما محبت دنیا آدمو بیچاره میکنه امام زین العابدین در این دعای ابو همزه شبا ناله میزد که محال می‌خونی چه‌جوری می‌کنه سیدی من یک چند جمله سیدی اخرج حب خب دنیا من قلبی می گفت اون میگفتا ز می گفت خدایا محبت دنیا رو از دل من خارج کن این منو بیچاره کرد همش دنبال دنیایی نماز میخونیم به جایی که با خدا حرف بزنیم تو بازاری تو رو دوست داریم دیگه میخره میفروشه کلای رو بر میداره تو نماز ها میگه هر کاری کردن ناکس اینو به ما نداد تو نماز میگه الان نماز رو بخونم میرم اینو بهش میگم خامش میکنم از چنگش در میرم تو نماز داره کلای رو بر میداره ترشو میده همین سلام میده میره سراخشو درجه. که اون تر رو اجرا کنه خب محبت زنیاست دیگه مرغ دل آدم با همونیه که دوستش می‌داره. جوانو خاطرخواه شدین عاشق شدین عاشق که میشید 24 ساعته یاد معشوقه دیگنم <تصفيق> حالا یه جوونی عاشق یه پسری میشه را حتما که نباید یه پسری رو خیلی دوست داره تون دولار نوجوانی پیش میاد ما بر برای اون پیش میامنم عجیب بسن یه بچه ای رو ما دوست داشتیم هم سن بود و. شبا میخوابیدم اصلا به یاد اون میخوایدم، من داره چیکار میکنه <تصفح> صبح که بیدار میشدم اولین کسی که یاد من میبتد اون بود بازار میرفتیم یاد اون بودیم دانشگاه میرفتیم یاد اون بودیم سر سرکار میرفتیم یاد... موتور سوار میشدم یاد اون... حساب میدم مگه آشره خداشین نونمون تو روغه نمیشه نمیگه هی بودیم خدای اونو بگی خودت بیا جاش بشین میگم مگه الکیه بچرو <تصفح> مفتی تو میخوای بچی عباس این محبت ما همش ناله میدادن اینو از ما بگی خودت بیا جاش بشین چه حالی میده بخوابیم به یاد تو بیدارشیم به یاد تو نماز بخوانیم به یاد تو عذاب بخوریم به یاد تو بازار بنیم به یاد تو دانشگاه بریم به یاد تو خدا همین رو رجالون در مورد اهل بیت میگد رجالون لا هم تجارتون ولا بیعون انذکر الله میگه مردانی هستند اینا نه خرید و فروش نه بازار هیچ چیزی اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه تو بازار میگن خدا تو سر کار میگن خدا تو مزرعه میگن خدا شب که میخوابن به یاد خدا بیدار که میشن یه دیگه بخونم یذکرون الله فدای اینا تفرجم <تصفح> گویینا خیلی کمند همون 14 تا دیگه در مساق اتمش یذکرون الله قیامن و قعودن و على جنوبهم بهم. میگه وقتی وایستادن یاد خدان وقتی هم میشینن یاد خدان وقتی هم رو پهلوهاشون دراز میکشن بودن یادم خدا یا وایستاده یا نشسته یا جوری دیگه میشه میگه <تصفح> شما یا وایستادی یعنی, یعنی همیشه یاد خدا چرا چون عاشق خدا همون مثل مثل اون کسی که عاشق یه جوانی شده همسن سال خودش تراموشش نمیکنه، بعد اون وقتی میاد مثل که همه دنیا رو به این دادن دیگه هیچی نمیخواد، میگه این باشه اصلا شامم نگوشه نهارم نگوشه اصلا همه چیه دوست میشد دیگه آقای بگو بقی این باشه این نره این وقتی پشت میکرد میرفت دیگه هیچی برای جلوه اصلا باش قرم میکرد دیگه نه ماشین براش جلوه داشت نه موتور. اصلا بوده همه کره زمین رو بهت میدم میگو من نمیخوام من اونو میخوام این زهده زهد اینجا سی شش آیون. اون میگه من خدا رو میخوام تو میگه چالزار متر زمین میدم میکن. میگه آقا من من خدا رو من گم شدم چیز دیگه هست رو میخوام براتون معنی کنم لکه امیر میگه خدا همه زهد تو دو کلمه قرآن گفته همه زهد استاد زهد دارم من زاهد تر از علی آقا تو عمرم ندیدم شما اگه دیدین بگی من ندیدم کسی بی اعتنا از از امیرالمومنین نسبت به دنیا. با اون همه امکانات حالا یه وقتی نداره به گفتم میگه یک مال دنیا نداره به دنیا فوش میده. <تصفح> چون دلش خنک شه. مثلا من از این ماشینا ندارم میگم گور پدر اینا میگم این دلم من خنک شه که. اما اگه داشته باشین که اینا رو نمیگیم میگیم آقا آقا یه حالی میده یه باد بشین پشتش صفای میکنه. اصلا میگه فرمونش دنب دنبست. من نمیگم <تصفح> وقتی داری که فوشش نمیدی که آدم نداره میگه خب نداره چند اما آقا جان ما فتما آقا این امیران رومنیم ما رو دیوانه کرده که با اینجوری با صحبت تو اوج ثروت و قدرت میگه از دنیا جیفتون و طلابها کلاب خیلی آقا هم من یه مالدار نگه اینجوری صحبت کرده اونجا میگه دنیا مرداری بیش نیست سگا میرن دنبالش آدم حسابی دنبال دنیا نمیده و خودش هم هیچ وقت نره ما الان نمیتونیم اینو بگیم بگیم آبرو خودمون میره میگن خب خود خودت پس سگی دیگه همش دنبال دنیای دیگه منو میتونم بگم آقا از دنیا جیفتون و, و ها کذاب میگه خب یکیش خودت دیگه مرد صبح تا شب برای دنیا داری میدوی دیگه کسی میتونه اینو بگه که شما یه روزم نریزه بشی دنبال دنیا رفته باشه از دنیا جیفتون و طلابها کلاب این پسراش اون دو روز آخری که از دنیا میرفت از 19 هم تا 20 هم قریمت بود واقعا امام حسن و امام حسن آمدن گفتن که ما رو نصیحت من کن یه یادگاری برای ما بذار و هموندن اوسی کنم من شما دوتا رو وسیعت میکنم به تقوه الله بوش بدیم به تقوا اما جمله بعدی رو و ان لا طبقت دنیا و ان بقت کما رو یک امام داره دو تا امامو نصیحت می‌کنه یه امام مخاطبش دو امام که اون دو امام سید جوانان بهش میگه که چی نیستن به اونا میگه که بچه های من خوب گوش بدین‌ها دنبال دنیا نرین عمرتونو صرف دنیا حیف عمری که صرف جمع و بری شما بذاری و بری نفله کردی عمرو اونایی که آقا دنیاشون رو گذاشتن برای جمع دنیا نفله کردن چون همه رو گذاشتن رفت بچه شما یه چیزی جمع کنی که بتونی ببری عمرتو صرف چیزی کن که میتونی با خودت ببری تو قبل اگه نمیتونی ببری نفله کردی دیگه گفت بچه‌های های من دنبال دنیا نرین بعد پشت سرش گفت اگه دنیا دنبال شما اومد اعتناش نکنیم بازم وقتی اون تلف میشه یه وقتا دنبال دنیا نمید دنیا تلف آدم میاد یه شب اینجا بودن روزی دوتاست یه روزی رو تو میدی دنبالش یه روزی خودش میاد گفت اگه دیدین دنیا خودش هم به طرف شما اومد اعتناش نکنیم وقتتون رو میگیره شما رو از آخرت باز میداره نمی نمیذاره به خدا برسی مختلف کنیه این منظورش دنیای بیش از نیازه دنیای بیش از کفافه تا کفاف که آدم احتیاج داره بیشترش دیگه اون دنیا رو داره برزمیداره حالا پر از همینه از دنیا جیفتان و طلابها کلاب دنیا مرداره هر کی رفت دنبالش سکه به این آهان آوروش هم نرفت علی یکی ندید علی دنبال دنیا رفته باشد کو؟ چی دیده چی میخود سه ساعت هم سوهان میگه یه روز خونش بودن نهار پیش من میگه دنیا رو به من دادن بعد به حسن این گفت خیلی فوقلاده تحویل گرفت سعصه رو به حسن این گفت برای عموتون صفره بندازیم اونو برادر خودش خطاب کرد سعصه این گفت بال در آباردن که علی منو و عموی بچه هاش گفت برای عموتو گفت سفره انداختم به من فرمودن که شما مشغول بشی من میرسم من آنجا دست کشیدم گفتم که با علی میخورم یعنی رو که مهمونشین با هم دوباره باره از گفتمم من ثبت میکن شما کم حذلت که تشریف آوردن یه صندوقچه رئیس حکومت ها یه صندخچه آورد کلید انداخ باقید. دو تا قرص نون جو در رووا گذاشتن سفره. و صفره. قف من گفتم اینا رو اصلنه این آوردن و همون رو میخورن همونی که علی میخورم من گفت هر کاری کردم دیدم نهتونم اینو بشکنم هرچی به دندون بدم دندونم نمیتون اینا رو نرم کنه گفتم علی جان چرا شما اینو گفت میکنی؟ نگو چرا میخوری؟ گفت چرا کسی اینو, اینو میدوزده؟ یعنی این نونا رو میدوزدن شما گفت میکنی کلیت میدازی؟ گفت هرکی هم علی جان بدوزده برمیگردونه به خودت <تصفيق> چون نمیتونه بخوره، میاره میده به خودت از دست نه، من نه که دیر کسی نیاد گفتش که سع این پسرای من حسنه اینونش اینا خیلی باباشون رو دوست دارن گای میبرن این نونای من رو روغن میمالن <تصفيق> اینا نرم میشه زیر زبون من مزه میکنه من اینا رو قفل میکنم بچه های من با من این کار رو آقا کی دیده کسی بی به دنیا مثل علی؟ <تصفيق> با ما که ندید کی دیده ازی همچین زخدی اینقدر بی به دنیا اما رو گفت تو یه دون خطبه های نماز جمعه اون ما که رئیس حکومت بودیدم آستینش رو حضرت خیلی تکم میده واسه <تصفح> کلافه شدم بودم چقدر انه امرو آستینش رو تکم میده دست شده گون میده بیخواره ممتبجم. آخر بعد نماز اومدم گفتم یا همیرانون من ندیده بودم شما این همه دست رو گفت امروز لباس شستم خشک نشد. <تصفيق> چیزی نداشتم بپوشم بیام و همین لباس های خیص... این منو کلافه میکرده. تکمیدم. <تصفيق> علی میگه من لباسی ندارم بپوشم. رئیس حکومت من. این بی اتنایی به دنیاست این زهده. حالا اینجا میفرماید از زهد. بعد این دیگه نمیاد که آقا برای مال دنیا قطع رحم کنه که. برای مال دنیا رشوه بده که چی میخورم که بخوام رشوه بدم برای مال دنیا اختلاس بکنن آدم زاهد که آقا نمیاد دنبال این چیزا که یا اگه قرص نون میخوره که نمیاد رشوه بده که نمیاد که بیتول وقتی آقا بیتول مال و تقسیم همه چیشم قشنگه ابن عوی رافه میگه وقتی بیتول مال تقسیم میکرد اولا برای خودش هیچ سهمی بر نمیداشت هیچ هم می گفت فقیر زیاده برای من سهمی کنار نار نزاره همش به ابن عبی رافی می گفت می گفت بده من دستم به دهنم میرسه. من گریمم از آب در میارم اما وقتی همه رو تقسیم می کرد درکت نماز می خوند بعد که نماز می خوند دستش بلند می کرد می گفت خدا یا تو شاهد باش من بیت المال رو به حق پر کردم به حقم تقسیم کردم یه بینار نذاشتم جا به جا بشه ها کی می تواند اینجوری صحبت این ظوته این بیهتنایی به دنیا اما ما تو کشور میبینیم مثلا یکی یه مدیر 80 میلیون حقوق میگیره یکی حقوقش 1 میلیون 250 مثلا شما نگاه این کجاست عدالته یکی 80 میلیون پاداش میگیره یکی 700 هزار این کجاش عدالته مگه این زن نداره مگه این بچه نداره مگه کرای خونه نمیده مگه این زندگی نمیکنه این کجاش عدالته اما علی میگه من بیت رو به اعبل پر کردم به اعلم تقسیم کردم خودم هم هیچ سهمی از بیت ندارم دولت کریم حالا ان امام زمان بیاد اینجوری میشه طرف حکومت میکنه حقوقم نمیگیره اصلا شما تعجب میکنی شیش صبح میاد دوازده شب میره پولم نمیگیره رهبر معظم انقلاب اینطوریه دیگه آقا از همه بیشتر کار میکنه یک قرونم از بیتولمال نمیگره یه باید هم آقا حقوق شما چقدره گفت من کاری هم میکنم که حقوق بگیرم گفت ما کاری نمی کنم کار طلبگی منو میکنم یه وعضی میکنم گفت من مگه کاری کردم که بابت حقوق هم بگیرم د بعد می دیدین اینجوری بهترین آدم‌ها میان الان تو کشور ما بگن آقا هر کی مدیر شه حقوق بهش نمیدیم پس کسی نمیاد خالصترین آدم‌ها میاد مدیر میشه درست دا آقا یعنی شما ده که از اون خالص‌تر پیدا نمیکنی میگه آقا من میام میگن حقوق نمیدیم آقا میگه آقا حقوق ندیم من خدمت میخوام بکنم من میخوام خدمت کنم من که کیسه ندوختم که ثواب داره چ... کار یه نفر رو راه اندازی اصلا نمیتونید ثوابش حساب کنی. میانه شما شما برای خدا اومدین اینجا بیتو لازم بهترین آدما میان هیئت چرا چون پول نمیدن پول نمیدن نه پول نمیدن پولم ازتون میگیرن اخرتاری کیسه هم میگیرن هر کی آقا 10000 تومان هم کمک میکنه بهترین آدما میان هیئت اما اگه بگن آقا ما بیت حسن هر کی بیاد هیئت شوی 10000 تومان اصلا دیگه به ما نمیرسه که ما ها تو میدان شهدا جواب پیدا نمیکنه ناراحت نشین آقا کثیف ترین آدما میان هیئت از چهار میان جا میگیرن میگن پول میدن حالا اگه ده هزار تومن رو بکنی ده میلیون تومن آه اصلا دیگه آقا قاچاخچی ها همه میان هیئر همه جلو های. میگن که آقا تو قاچاقم هم اینقدر در نمیاد اگه بگن ده تا سکه بها رازه هرچی ببری بالاتر و در میشه اصلا خوبی هیئت اینه که پول نمیدن پولم هم میگیرن به خدا پاکترین آدم ها میان میگن آقا ما هر جا پول بیاد خراب میکنه <تصفيق> هر جا مثلا زمان تاقود پاکترین آدم مثلا مسجد ما یه اومنا داشت حیط اومنا داشت یه آقای اسمشا نمیخوام بیارم همزم زنده است. این دست به جیب بود شاید در ما دو سه میلیون الان به پول امرو دارم میگم خلج مسجد میکرد پول رو میداد پول رو میداد از کسی نمیومد امنا بشه مگدن آقام بگه امنا چیه بعد پول بدی دیگه اما الان مسجد ها چی دارا بردن پاساج دارا مغازه دارا رستوران دارا پول توشه حالا مگه میزنن هر کسی امنا بشه مگه بگی میتونی امنا بشه چون اینجا نباید پول بدی که اینجا پول میگیری هر جا پول بیاد فاسدترین آدم ها رو جذب میکنه الان خوب کربلا اینه که آقا پیاده میرن پول نمیدن پول هم میگیرن میگن هرچی میخواد پیاده بیاد بعد دو میلیون هم خرج کنه یکی میگه من جونم هم فضال. دو میلیون چیه من جون برای ما موسیقی میدم واقعا هم جونشونو میدم دو میلیون داده تب میکنه پاشم خون میاد من بعضی دوستانم هم آقا اونجا تا مرز مرگ رفتم یکیشون شون میگفت من دیگه اعتمال نمیدم ایران رو ببینم اینجور ولیز شده بود الان نمیدم میاد این شب اومده یا نه این ها دوستان ما بودن سال بعد دوباره میاد اینجوری آقا پاکترین آدم اما اگه بگن آقا عربه هر هرکی بره کربلا ما ده تا سکه بشمون آقا بیا تماشا کنم کیا میاد جایی نیست آقا پول بیاد خراب نکنه اصلا ممکن نیست میخوام دولت کریمه براتون معنی کنم اون میخوام بگم امام زمان کیا رو میاره پست میده میگه آقا بیا کار کن پولم نگیر برای خدا خدمت کن دیگر آقا چی بالاتر از این گره کار یه نفر رو باز کنی آخرت درست کردی شما نمیدونی آقا اینی که رئیس چقدر میتونه به محرومین خدمت کنه قدر نمیدونه شما نمیدونه شما که اصلا کارمند جز هستی آقا نمی‌دونی چقدر میتونه گره مردم رو باز کنی پیره مرد آقا از خوزستان اومده. بنده خدا ناامید چقدر توسل کرده. شما بریم میگه ما با چه میگه خدا کنه کارام سهیلی هی hey میگم برو فردا بیا پاش درد میکنه. اومده میگه شما شما کارمندی میتونی کارش راه بندازی آقا وقتی میره هی میگه انشالله هرچی میخوای خدا بده داد. جوان خود. آقا نمیدونی این چه خدمت بزرگیه این چه عبادت بزرگیه. یکی راضی رفت کرد. حالا من میگم یه کاری کن همه دوهات کنن اصلا یه کاری کن آقای جمعیت زیادی بگن آقا هر چی میخواد خدا آ این خدا خیلیش بده هر دفعه میرین بیچ این رامون میندازید هر کدومش به دریق نمیکنه حالا اگه بند خدا رو از اونجا ورش کم یکم آقا کار رامونازه ورش میدارن میگن این وسیله ناجوره میگن این چرا میکنه ما نمیگنیم بچه ها میگن حالا اگه بذارن اینجا جرمش چیه جرمش نکه کار مردم را میده این توجه در ظلف چون کمندش ای دل مپیچ چکانجا سرها بریده دینی، بی جرم و بی جنایت این جرمش چیه به جرم خدمت حالا قرار زمینه زود همش تحتمش امیرالمؤمنین میگه دو کلمه قرآنه میگه میگم دو کلمه چیه میگه همین لکیلات ترسا و علاما فاتکم زاهد کسیه که دنیا وقتی از دستش میره قصه نغوره چون عاشق دنیانی دنیام بهش بدی شاد نمیشه این یعنی چی یعنی اولویت اولش دنیا نیست مؤمن گم شدهش دنیانی پس شدش چیه؟ رضای خدا. ببین توجه برمه ولی ما مت... من خودم رو هرگونم نارهد هر نشن من ما میگن. ما اگه نگم هر جا قصه میخوریم برا دنیا میخوریم هر جا هم شادی میکنیم برا دنیا شادی می‌کنیم. بخاطر این ممدونی این قصه تاریک میکنه. این شادی هم تاریک میکنه. اینه که به قارون میگفتن لا تفره. نه نش... شادی بد باشد می گفتم چون تو برام نعمت دنیا شادی میکنی خدا دوست نداره ان الله لا یهد بلفرهین مثلا ما که اینا به من میگن آقا چرا ناراحتی میگم ماشینم خط انداخت میگه, احصاب... میگه صبح صفر گرفته بودم اونا سر تا سر جوقت اعصابم خوب میگه برو بریم مسجد میگم اصلا من حالو خونه میخوابم دیگه حوصله ندارم اعصابش خورد ماشینشو خط انداخت یه روزم میگن آقا چقد شنگولی میگه تو قرض وطنی بانک میلیون برنده شد این شادی میکنه دنیا بهشون کرده قصه میخوره میگه 100 تومن گم کرده موبایلامو بردن. اما چجوره مومن چجوره مومن میگن چرا ناراحتی میگه دیشب نماز شب خواب موندم آفوام خورد این گم شدهش دنیایی ببینید میگن اون نماز شب که واجب نیست میگن از کف من رفت از کفمون رفت. میگن چرا ناراحتی؟ میگه دیرو رفتم بیت و نتونستم دریه کنم. اعصابم خورده. چشم خوش. میگه آقا واجب نگریم. میگه من از کفمون رفت. از کفمون رفت. میگن چرا ناراحتی؟ میگه رفقا عید فت رفتن کربلا ما جا موندن. میگه آقا واجب نیکه بری کن. میگه آقا حیفه تو نمیدیدیم چه خبره که. اگه قصه میخوره آقا میگه آخرت از کفم رفته اگر هم شادی می... میگن چرا شادی میگه امشب این هفته شب جمع کربلا <تصفح> سر از پانه میشناسب شادیش برا آخرت هستش. گم شدهش دنیانی؟ اینو میگن ظاهی حالا بهش بگو آقا مال میگه فدای سر حسینب معلی میگه ما کربلا باییم اون مهم نی میگه آقا سه میلیون خم میگه آقا خوب. بده بره میگو برای ماموسینه چقدر آقا مردم در امام ماموسین میدن میگه بده, بده. یه... میگه یه لحظه بین الحرمین یه سلام به حسین ابن علی کنی آقا میلیارد بدن این بالاتره واقعا هم بالاتره جهب میلیارد بدی یه شب جمعه کربلا یه سلام به حسین ابن علی کنی تو بردی این... این میشه زود این میشه زود بی اعتنایی یعنی گم شده شما دنیانی فقط رضای خدا اینه که زینب و کربلا آوردن و میگه ما رعی تو الا جمیلا قای میگه آقا چیش دیباز؟ میگه آره اسیر شدم اما خدا از من راضیه تو نمیفهمین اینو توجه میگه آره کتکم میزنن تازیانه میخورن اما خدا داره به من به نظر رحمت نگاه می برای من میگه این اصحارت از اصل شیرین تره چون برای خدا هست. چون رضایت خدا دوشه این آقایون یه معرفتی پشتش کن ما رأی الا جمیلا میگه ابن زیاد اسیرم کردی تازیانن میزنی اما قیامت وایستا ببین خدا پای اینا چی میده اما میگه تو رئیس حکومتی اما مورد سخت و قضر خدایی گو اصلا ابن زیاد من آرزون نمی کنم یه لحظه جایی خدا نیاره من جای تو باشه رئیس باشم نوکر داشته باشم پلفرد اما خدا به من به چشم سخت و قذب نگاه کنه بعد دید نمیتونه آقا ابن زیاد مشروب خور کجا این معارف عرشی کجا به خدا آقا کجا آدمی که آقا مست کجا فهمیدن این معارف کجا وقتی که داشت تو بازار کوفه صحبت میکرد آخر امام زینالابدین فرمودن که امتی زینب اسکوتی یا امتی زینب ازکتی گم امه جان ما رو به زبون فارسی میگیم یه خود شاید بیعدبی هم من رو داغ کردم به زبون یعنی یعنی تو کسیف نکن دم به اینا نزار اینا چه میگیم اینا رو برشن نخدلوبی ها برا ما آقا بگم پیتزا خوب کجاست مثلا میگم پیتزا خوب میخوای بخوری تجریش نمیدونم چی چی بنده خدا میره 3 ساعت سقف وای میسته چقدام زغغ میکنه میگه عجب آقا میگم 3 ساعت تو سقفی سرپام میخوری حالم کردی بعد میگه حالا میبرمت یه معجون تهران پارس بهت میدم عمرت آقا بابا میره اونجا بعد اومد میگم آقا پیتزای کجا خوبه کباب کجا ما چه میفهم یا عمتی زینب اسکوتی امتبه حمد الله عالم آقا وقت این ممکنه توهین باشه من وقت زنم میاد تو دعوا صحبت میکنه من میگم برو تو تو چی میگی من دارم میگم بر برو تو میگم ناموسانه دیگه تو چی میگی میگه من دارم میگم دیگه برو تو در محکم میواد این اهانته یه وقت ممکنه بگه عمتی زینب یعنی من دارم میگم تو چی میگی اما جمله نشون میده تمجیده انته به همدلله عالمتون به غیر معلمه گفت <تصفيق> تو به همدلله عالمی اما کجا این رو یاد گرفتی؟ علم لدونی خدا از مادرش هم یاد نگرفت اگه بگی از مادرش یاد گرفته بود مقامش آوردی پایین خدای وزش داده معلمش خداست اگه بگی از امیر المومنیت یاد گرفته مقامش آوردی پایین میگه تو معلم نداری نه معلمت علیه نه معلمت فاطمه زهرا باشه معلم میگه تو معلمت خداست فهمتون به بقی... بعد میگه تو اینا رو واسه اینا میگی میگه اینا ج... از اینا تو چی میگی ابن زیاد ف... نمیفهمه گفت ابن زیاد اینو میفهمید گفت این دو روز دنیا میگذره تو الان حالیت نمیشه الان مستی مستی یار مشروب میخوردن خوردن امامو می آوردن اونا مجلث مجلس شراب می آوردن من تواجبهام گفت تو مستی حالیت نمیشه اما روز قیامت جلو جدم رسول خدا حالیت میکنم خدا با تو چه کرده با ما چه کرده. گفت تو الان حالیت نمیشه و به من میگی که دیدی خدا باش گم من جلو پیغمبر حالیت میکنم که تو آقبت چیه و من آقبتم چیه مرد حسابی به من میگی که دیدی خدا باش ما چه کرد چه کرد من عزیز دردونه خدا هم خدا اگه یه جا مجلسی باشه 124000 هزار پیغمبر نشسته باشن 124 همه امامام نشسته باشن این خانوم واردشه همه بلند میشن خدا به خدا آقای اون قسم هم کردم همه دست به سینه بایی می کنم من... تو چی میفهمی به من میگه خدا با تو چه کرد تو چه می دانی خدا به من چی داده خدا آقای اون وگا من چجوری به تو حالی کنم میگم 124 هزار پیغم امام زمان میگه زینه امام زمان مثل بارون داده گریه بودم آقا چه گریه اینه مثل... و حالا از آسمان چهارم راحت می شدم دیدم ملائکه مجلس روزه گرفتن یکی رفته بالا منبری که از ملائکه از رو از رو داره خطبه کوفه امه ما زینب رو از رو اینا دارن زجه می پای پایین خطبه هر کاری می کنم خودمو نمتونم نگردم امام زمان میگه گه زینب امام حسین میگه زینب چند قدم که رفت امام حسین تو ودا چند قدم که رفت برگشت گفت یا اختا عجیبا گفت امشب نماز شب میخونی منو دعا کنم لا تنسی امام زمان بهش التماس دعا میگه خب اینا ابن زیاد میفهمه خب من حسین داره به من التماس اون محتاج دعای منه لا تنسی نیفی لیلک گفت امشب نماز شب میخونی داداش یادت نره من دیگه سرم بالا نیزه پیش اومد به خدا نمیخواستم در خونه هستم کی جرعت داره برگرده ما نمیخواستیم از تو زینب رو خونیم زیاد تو این ماه خوندم اما کی جور داره برگرده اما همینی که یه شب اینجا گفتم همه شنیدین همه پا منبر بودین دیگه تو همین ماما یه بار گفتم وقتی پیغمبر آمد بالا بدن همزه دید همزه رو مصلح کرده نخوام با زینب ببرم تو گودال التماس دعا بریم با زینب تو گودار اگه تونستی تو هم لبهاتو بذار رگهای بریده یه برگرده ثواب این زیارت را کسی جز من وقتی آمد بالا بدن همزه چون همزه رو مصلح بینیش رو بریده بودن لباش و گوشاش و چشماش و پاهاش و انگشتان با انگشتان اصلا بیتابی میکرد رسول خدا این کینه میکشت پیغمبرو که اینا چقدر کینه چکمشه نگام کردی روده عمل کشیدم بیرون های های گریم بعد گله کرد گفت همه گریه کن دارن برا عمومیش که گریه نمیکنه. فقط پیغمبر گریه این مادرای شهید وقتی شنیدن پدرای شهید شنیدن کشتهای خودشونو شهیدای خودشونو بل کرد مادر شهید میومد برا حمزه بلند بلند گفت پیغمبر گله کرده به شوهرش گفت بیا بلش کن بریم واسه حمزه گریه 70 80 نفر جمع شد، زجه میده بدن پیغمبر هی میفرمود خدا خیر بده هر کی برای اموی من اینجا گریه نکرد. جوونا بدون و قطعا بدون. اگه تو هم امرو امشب برای زینب بلند بلند گریه کنی امام زمان دعوات میکنه. میگه خدا خیر بده هر کی برا عمه من بلند بلند گریه ناله میکنه. خب مجلس خوب بود پیغمبر یه مجلس شهیده یه وقت آمدن به پیغمبر گفتن صفیه خاتون داره خواهر خوهر حمزه به پیغمبر چی کرد اومد جلو امه شو گره گفت امه جان هیچ خوهری نمیتونه بدن برادرش رو اینجوری بگیر گفت دق میخواید از خادر میان من از مدینه تا اینجا دویدم منو برم نگردم گفت محرومم نکن پیغمبر باید سلاح ندید اومد اباشو انداخ رو همزه عباب اندازی پا بیرون میمونه دیگه عباب پا رو بیرون میده دید انگشتان پا رو بریدن با این و خاشاک اینقدر ایخ گفت خواهر میاد انگشت بریده هم من از شما سوال میکنم من از همه تو. مگه سر همزه رو بریده بودم بی سر که نبود مگه رو بدن عمزه اصد دونده بودن نه اما زینب رو آوردن تو گودال قفلگاه نه رو پوش،, رو پوش که نه انداختن همون لباسش هم دوزیده بودن بردن همون لباسش بودن. بدن اوریان پار پاره بی سر زیر سمع از برفته آخ آخ, آخ. این دستار و انداخت زیر این بدن هی hey, صدا میزد خدا یا این قلیل قربانی رو از ما بکرم و قبول ارزم زمان دیگه بیشتر نمیتونم این بدن رو گرفت رو به مدینه گفت یا رسول الله حازا حسین رو کسیم مرملون به دمان مصلوب مسلوب العمامت و